فصل تو بار نشستم که تینا خانوم و جانیم تشریف بیارن برنامه را اجرا کنن ولی خبری نشد یه آدم کروکسیفی با موهای فرومد نشست پشت پیانو بعد والنسیا خواننده جدید هتل اومد آواز بخونه همچین مالی نبود ولی باز از تینا و جانین بهتر بود حداقل آهنگ درست میخوند پیانو درست کنار باری بود که پشتش نشسته بودم و والنسیا سمت راستم واایستاده بود براش چشم و ابرو اومدم ولی وانمود کرد ندیده معمولا از این کار را نمیکردم ولی حسابی داشتم مست می شدم وقتی آوازش تموم شد همچین توندی از اتاق زد بیرون که وقت نکردم دعوتش کنم بیاد بشونه یه چیزی با هم بزنیم به خاطر همین سرپیش خدمتوس صدا کردم و بهش گفتم به والنسیا بگه اگه دوست داره بیاد سر میز که با هم یه چیزی بزنیم گفت حتماً پیغامم هم میرسونه ولی معلوم بود که نمیرسونه آدما معمولا هیچ وقت پیغامتون نمیرسونن پسر تو ساعت 1:3 نصف شب تو انبار موندم و مخم و پیاده کردم این آدم نمیتونستم بایستم فقط حواسم بود اونقدری از حد نگذرونم که به کسی حرفی چیزی بزنم دلم نمیخواست رو جمع خودم کنم یا کاری کنم که کسی به پرس چند سالمه جلو جلوپامو به زور میدیدم پسر وقتی حسابی سرم گرم شد دوباره افتادم تو همون ادای تیر خوردن شکمام این حرفا تن آدم اونجا که تیر خورده بود من بودم دستام از زیر کتم گذاشتم رو شکمم تا جلوی خون ریزی شو بگیرم نمیخواستم کسی بفهمه تیر خوردم نباید کسی میفهمی تنها خاک بر سر چلمنی که تیر خورده منم دوباره با خودم گفتم برم به جین زنگ بزنم ببینم رسیده خونی یا نه بلند شدم رفتم میزه حساب کردم بعد زدم بیرون و یه راست رفتم طرف باجه تلفن. دستم همینطوری زیر کتم هم بود تا جلوی خون ریزی ما بگیرم تو هفروت بودم پسر تا رسیدم به باجه تلفن حال نکردم به جین زنگ بزنم گمونم خیلی سرم داغ شده بود خاطر همین گفتم به صالحی زنگ بزنم زنم بار شماره گرفتم تا آخر سر موفق شدم کورم شده بودم وقتی یکی برداشت داد زدم الو خیلی حسام قارش میش بود پسر صدای یخ زنی پرسید شما؟ منم هولدن کالفید میخوام با سالی حرف بزنم سالی خوابیده من مادر بزرگشم هولدن چرا این وقت شب زنگ زدی؟ میدونی ساعت چنده؟ آره میخوام با سالی حرف بزنم خیلی مهمه گوشی رو بده بهش سالی خوابیده پسر جون بردو بهش زنگ بزن شب بخیر بیدارش کن بیدارش کن تا بجامب یه استعدایی دیگه ای گفت هولدن منم آره خود سالی بود چه خبر شلوغش کردی؟ سالی خودتی آره چه ته ماری زدی؟ آره ببین ببین من کریسمس میام پیشت باشه میام با هم درخت ترزین کنیم باشه آی سالی باشه باشه تو حالت خوب نیست برو بخواب الان کجایی؟ کی همراته؟ ته؟ سالی میام درخت رو کنم باشه هی با تو هم باشه باشه الان برو بخواب کجایی؟ هی کالفید کی باهاته هاته؟ هیشگی. خودم و خودش و سایش. پسر اوزام بعد جور ناجور بود هنوز دستم رو شکمم بود منو گیر انداختن عرازل راکی گیرم انداختن میدونستی سالی؟ میدونستی دنبال من؟ صداتو نمی شدم. برو بخواب باید برم فردو به زنگ بزن آی سالی می‌خاید درختتو تزئین کنم ها؟ می‌خاید دیگه نه؟ آره. شب بخیر کالفید برو خونه بخواب. گوشی و قطع کرد. شب بخیر. شب بخیر سالی جونم. سالی عزیزم. میشد تصور کرد تو چه وضعی بودم. منم گوشی و قطع کردم. گمونم تازه از سر قراری برگشته بود خونه لابد با زوج لانتز و اون یارو مسخری خودشیفته رفته بود بیرون همه تو قوری چای شنامی کردن و به هم چرندیات حال به همزن زن می دادن مثلا خیلی با حال بودن با خودم گفتم کاش بهش سعی نمی زدم من وقتی مست می کنم هیچی حالیم نیست از باجه بیرون نیومدم دستم رو گرفته بودم به تلفن که نیفتم راستش اصلا حال خوشی نداشتم بلاخره خودم رو جمع جور کردم اومدم بیرون و رفتم دستشوی مردونه بعد جور تلو تلو میخوردم یکی از روشوی ها پره آب سرد کردم و کلم رو تا بناگوش چپوندم تو حتی خودم خشک نکردم گذاشتم همینطوری از سر و کلم آب بچکه بعد رفتم طرف شفاشه کنار پنجره رو نشستم روش گرم بود منم اینه چی میلرزیدم مسخره صغره ولی همیشه تو همچین شرایطی میلرزم کار دیگه این نداشتم بس همینطوری نشستم روش شفاش رو شروع کردم به شموردن این کاشی های سفید سفیده رو زمین حسابی داشتم می میشدم یه بطری آب از گردنم شرره میکرد توی یقه و کرو و جونم ولی مهم نبود مستر از این حرف بودم بعدش یهو یارو یا رو پیانیست والنسی از راه رسید آدمی کراکسیفی بود و خبر مرگش اومده بود اون موهای فرم از شونه کنه موقعی که مشغول شونه کردن بود با هم حرف زدیم البته نکبت اصلا را نداد که باش گرم بگیرم هی تو همونی که واسه والنسیا خوشگله تو بار میزنه آره؟ بله درسته. آوزیه زبل. همیشه میخورم به تور این عوضیه ای زبل ببین بگو خیلی خوب میخونه. ازش بپرس پیش خدمت پیغاممو بهش رسونده؟ چرا نمیری خونه رفیق؟ ببینم تو چند سالته؟ و شیش ببین ارادت منو بهش برسون باشه نمیخوای بری خونه رفیق من نه بسر خیلی خوب میزدی اینو گفتم که علکی ازش تعریف کرده باشم راستش کارش افتزا بود حتما میتونی بری رادیو آدم خوشتی پیمست تو حیفه هیفه این موهای فرد قشنگت نیست ببینم تو مدیر برنامه نمیخوای اینه بچه آدم برو خونت بگیر بخواب خونم کجا بود این وقت شب جدی میگم و ببینم تو مدیر برنامه نمیخوای جوابمو نداد و رفت شونه این مسخرش تموم شده بود سر رفت گرفت عین استرد لیتر همه بچه خوشتی بین همان وقتی شونه کردن موهاشون تموم شد میزنم به چکر از روشوفاش که بلند شدم تا برم لباسامو تحویل بگیرم داشتم گریه میکردم نمیدونم چرا ولی ولی داشتم گریه میکردم یا اونم به خاطر حوار شدن غم و زور تنهایی و از این حرفا بود وقتی رفتم تو اتاق تحویل لباس دیدم قبضم گم شده یه دختری که محصول اونجا بود آدم خیلی خوبی بود کتمو داد صفحه هم که برای فیبی خریده بودم داد به خاطر لطفش خواستم یه دلار بهش بدم ولی قبول نکرد مدام میگفت برم خونه بخوابم خواستم بعد از وقت کاری باش یه قرار چیزی بذارم ولی رازی نشد میگفت جایی مامانمه ممایی سفیدم و بهش نشون دادم و گفتم که چهل و دو سالمه حسابی شوخیم گرفته بود البته دختر مهربونی بود بهش کله قرمز شکاریمو نشون دادم خوشش اومد گفت قبل از رفتن سرم کنم چون موهام خیسه. راست میگفت بیرون که رفتم مستی از سرم پریده بود ولی هوا خیلی سرد بود و دندونم از سرما میخوردم به هم جلشم نمیتونستم بگیرم رفتم خیابون مدیسون و خواستم اتوبوسی چیزیگیر بیارم دیگه خبری از تاکسی گرفتن نبود پولم ته کشیده بود و باید حواسمو جمع میکردم اما حس اتوبوس سواری هم نبود تازه مقصدی هم نداشتم پس پیاده راه افتادم طرف پارک گفتم میرم سمت دریاچه کوچولو ببینم مرغابیو چیکار میکنن ببینم اصلا هستن یا نیستن مطمئن نبودم کجا خیلی از پارک دور نبود تازه جای دیگه هم نداشتم برم هنوز تصمیم نگرفته بودم کجا بخوابم پس رفتم سمت پارک هر حسی داشتم جز خستگی خیلی ناراحت بودم خیلی تا رسیدم پارک یه اتفاق بعدی افتاد صفحه فیبی از دستم افتاد زمین و با اینکه تو پاکت بزرگی بود خوردا خاک شیر شد نزدیک بود بزنم زیر گریه تنکاری که کردم این بود که تیکهاشو از توی پاکت در و ریخدمشون توی جیب کتم. دیگه مفتم نمیارزید ولی دلم نمیخواست دورشون بندازم. بعدش رفتم تو پارک. پسر حسابی تاریک بود. بچه نیویورک هم و پارک مرکزی و این کف دستم میشنسم. همین بچهگیم توش اسکیت بازی کرده بودم و دوچرخه سواری. ولی نمیدونم اون شب چطور نتونستم طالب رو پیدا کنم. جاشو بلد بودم کنار قسمت جنوبی پارک بود ولی پیداش نمی کردم یه اونم هنوز مست بودم هی راه رفتم و راه رفتم و تاریک و تاریک و خفن و خفن تر شد هیچکس کس تو پارک نبود همون بهتر اگه کسی رو می دیدم از تر زهر ترک می شد آخر سر پیداش کردم تقریبا یخ بسته بود ولی خبری از مرغابیا نبود من دور تا دورشو گشتم نزدیک بود سر بخورم توش ولی از مرغابیا خبری نبود گفتم اگم باشن الان خوابیدن یا کنار آب یا کنار چمنا بخاطر همین نزدیک بود سر بخورم تو آب ولی من چیزی پیدا نکردم بالاخره رو نیمکتی که خیلی هم تاریک نبود نشستم هموزم داشتم میلرزیدم با اینکه که کلا شکاری سرم بود پشت مهم قندیل بسته بود نگران شدم گفتم الان سینه پهلو میکنم میمیرم پسر جمعیتی رو که اومده بودن تشیر جنازم تجسم کردم پدر بزرگم از دیترویت. همونی که وقتی بای سوار اتوبوس میشی مدام اسم خیابونا رو تحویلت میده خالم پنجات ایک خاله دارم بقیه ای فک و فامیل ارازل بازاری می برای خودش همه سر تش جنازه بودن اتحادیه ابلهان جهانی یه جمع شده بودن دیوه برام تعریف کرد که خاله ده دهم بوگندومو و میگفته ال تو چه آرامشی رفته ولش کن بیشتر نگران بودم با اون همه موی قندیل سینه سین نکنم و بمیرم دلم برای مامان بابا میسوخت بیشتر مامانم آخه بیچاره هنوز با مرگ ال کنار مدام تصورش میکردم که با چه حالی بالا سر لباس و وسیله ورزشیم باستاده. ولی قسمت خوبش اینجا بود که نمیذاشتم فیبی هم تو مراسم باشه چون هنوز بچه هست. آره تن خوبیش همینه بعد به جماعتی فکر کردم که دارم میزارنم تو قبری که اسمم رو سنگش نوشته شده کنار مرده دیگه به سر وقتی مردی حسابی بهت میرسن و مرتبت میکنن خدا کنه وقتی مردم بندازنم تو رودخونه ای جایی اصلا هر جا هر جا غیر از قبرستون دوست ندارم مردم یک شنبا بیان خبرم گل بندازن و بریزن وقتی مردی گل به چه کارت میاد؟ به هیچ کارت وقتی هوا آفتابی باشه مامان بابا میرن گل میگیرن میذارن و قبره هل یکی دوباره رفتم ولی بعدش بیخیال شدم. از دیدن قبرستونه پر از مرده و سنگ قبر واقعا حال نمیکنم. البته وقتی هوا آفتابی باشه خیلی هم بد نیست. من فقط دوبار رفتم. بار دوم داشت بارون می اومد. خیلی بد بود. بارون میخورد رو سنگ قبر و سبزوی که رو سنگ قبر در اومده بودن. همه جا بارون میبارید. همه اونایی که اونجا بودن تندی دویدن و سوار ماشیناشون شدن همین بیشتر به همم هم میرخت همه سوار ماشیناشون شدن و رادیوشون رو روشن کردن و رفتن یه جای شامی بزنن همه جوز ال چطوری میشه همچین چیزی رو تحمل کرد؟ میدونستم جسدش تو قبره و روحش به بهشت رفت و این حرف ولی واقعا تحملشون رو نداشتم کاش اونجا نبود؟ تو که نمیشناختیش. اگه میشناختیش میفهمیدی منظورمو. وقتی خورشید میخواد طول کنه اونجا خیلی هم بد نیست البته فقط وقتی که میخواد طول کنه. بعد از چند لحظه برای اینکه از فکر سینه پهلو بیرون بیام پولامو درآوردم و زیر نور زپرتی چراغ برق شمادمشون. فقط سه دلار و سی سنت پول داشتم آره. از پنسی به این طرف خرجم بالا رفته بود رفتم کنار طالاب و سکه ها رو انداختم اون تو جایی که یخ نزده بود نمیدونم چرا ولی خب این کار کردم دیگه خیال کردم اینطوری از فکر سینه پهلو و مردم فرار میکنم اما نشد که نشد به فیبی فکر کردم به اینکه چه حالی پیدا میکنه وقتی بفهمه از سین پهلو مردم چگونه بود ولی نمیتونستم جلوی خودم بگیرم حتما حالش خیلی بد میشد آخه خیلی دوستم داره زیادی دوستم داره دارم جدی میگم هر کاری میکردم از فکرم بیرون نمیرفت به خاطر همین گفتم یواشکی برم خونه و برای آخرین بار ببینمش که اگه مردم دیگه دلم نسوزه کلید خونه همراه بود گفتم بیسر و صدا میرم تو آپارتمانو و یکمی پاش گپ میزنم. فقط نگران ورودی آپارتمان بودم زیادی صدا می داد آپارتمان کهانه یه سرایی دارشم از اون عوضی که زورش میگیره کاری بکنه و به هر کدوم از درا که دست میزنی زنی صدیه قیریج و ریجشون بلند میشه. ممکن بود مامان بابا متوجه بشن ولی دلو زدم به دریا دیگه از پارک کوفتی زدم بیرون و رفتم سمت خونه تموم راه و پیاده رفتم خیلی دور نبود منم که نه خسته بودم نه چیزی فقط فقط سردم بود خیلی سردم بود و تو خیابون پرنده هم پر نمیزد